سلام به همه قصه دوستای عزیز در کانال تلگرامی هزار افسان. میخوام شما رو با خودم ببرم یه جای دور. خیلی دورتر از اون چیزی که توی نقشه ها میشدید. به دل سرزمین پریان جایی که جادو واقعیه و هر پرنده‌ای شاید قصهای برای گفتن داشته باشه. یه افسانه در راهه. قول میدین تا آخرش با من بمونین. پس اگه آماده این دست دلتون رو بگیرین و تا آخر این قصه با من همراه باشین چون آخر این قصه یه چیزی داره که فقط شنونده های وفادار می اسم قصه هست کلاقی از سرزمین پریان بریم که با هم قصه را شروع کنیم روزی روزگاری تو زمانی که هیچ زمانی در کار نبود و غیر از خدا هیچ کس نبود مردی بود که یه پسر داشت پدر هر روز به جنگل می رفت و پرنده کار می کرد و اونا رو به اولین مشتری که سر راهش قرار می میفروخت. اما عاقبت پدر از دنیا رفت و پسر تک و تنها موند اون از شغل پدرش هیچی نمیدونست اما یه روز که توی خونه دنبال چیزی میگشت به تلهی برخورد که مخصوص شکار پرنده بود پس تله رو برداشت به جنگل رفت و اون رو روی یک درخت کار گذاشت تو همون لحظه کلاقی روی درخت نشست و از اونجا که پسر تله رو زیرکانه کار گذاشته بود پرنده بیچاره به دام افتاد ون برای گرفتن کلاق از درخت بالا رفت. اما وقتی اون رو گرفت پرنده بینوا بنا کرد به خواهش و تمنا که پسر بذاره تا اون بره و بجاش، قول میده که پرنده زیباتر و گرون قیمت تری براش بیاره. کلاق به قدری اجز و لابه کرد و به جان پسر دعا کرد که آقبت پسرونو رو آزاد کرد و دوباره تلهش رو همونجا کار گذاشت و پای درخت منتظر نشست. در همون حال یه پرنده دیگه روی درخت فرود اومد. درست همون جایی که تله کار گذاشته شده بود. جوون دوباره از درخت بالا رفت تا پرنده رو بگیره. اما وقتی چشمش به اون افتاد، مات و مبهوت سر جاش خشکش زد. آخه پرنده ای به دامش افتاده بود که زیباتر از اون توی جنگل ندیده بود جوون با خنده ای بر لب محو تماشای پرنده بود که کلاق دوباره پیداشت شد و گفت این پرنده رو ببر نزد پادشاه تا اون رو ازت بخره پس جوون پرنده رو از تله بیرون آورد اون رو توی قفصی انداخت و به قصر پادشاه برد. پادشاه با دیدن اون موجود کوچک و زیبا غرق در شادی شد و اونقدر پول به جوون داد که جوون نمیدونست با اون همه پول چی کار کنه. پرنده را توی قفصی از طلا گذاشتن و پادشاه روز و شب از داشتن چنین پرندهی به خودش می بالید. اما براتون بگم از نور چشمی پادشاه. نور چشمی پادشاه که به اقبال بلند اون جوون و پولی که از این راه به جیب زده بود به شدت حسودیش شده بود به مغزش فشار آورد تا راهی پیدا کنه و کاری دست جوون بده. عاقبت نقشهی به ذهنش رسید و یه روز به سراغ پادشاه رفت و بهش گفت پادشاه ها؟ میدونید دونید که اگه قصری از آج برای پرندتون بسازین چقدر زندگی خوشحال تری داشته باشه؟ پادشاه جواب داد بله، اما این همه آج از کجا بیارم تا براش همچین قصری بسازم نور چشمی پادشاه جواب داد همون جوونکی که پرنده را براتون آورده حتما میتونه تونه هر قدر آج لازم باشه هم براتون بیاره پس پادشاه پی شکارچی کوچک قصه ما فرستاد و بهش دست دور داد که درجا برای پرندش قصری از آج بسازه چون میدونه دونه که جوون می تونه هر چقدر لازم باشه آج پیدا کنه جوون با حالتی ماتم گرفته گفت اما آخه سرور من این همه آج از کجا بیارم؟ پادشاه جواب داد این دیگه به خودت مربوطه چهل روز وقت داری تا دنبال آج بگردی اما اگه روز چهل رو یکم برسه و آجها اینجا نباشه سرت رو میبرم و میذارم روی سینت جوون که سخت به درد سر افتاده بود در فکر بود که از کدوم راه بره تا بتونه سر نخی از آج پیدا کنه که یه هو کلاغ پروازکنان پیدا شد و ازش پرسید که چرا این همه قصه داره جوون هم به کلاق گفت که یه پرنده کوچیک چه دردسر بزرگی براش درست کرده کلاق گفت اینکه قصه نداره کافیه بری پیش پادشاه و ازش بخوای به اندازه بار چهل گاری به تو شراب بده جوون به قصر برگشت شرابی رو که میخواست گرفت و در حالی که با گاری های شراب از قصر برمیگشت گشت کلاق پیش پاش فرود اومد و گفت تو همین نزدیکی جنگلیه و در کنار اون چهل نهر بزرگ آبه هرچی فیل روی زمین به این بزرگیه به اونجا میاد تا از آب این چهل نهر بنوشه برو و توی نهرا به جای آب شراب جاری کن فیل ها با نوشیدن شراب مست و لایقل نقش زمین میشن اون وقت تو میتونی آجاشون رو بکنی و برای پادشاه ببری جوون گفته های کلاق و مو به مو اجرا کرد و گاری های خالی از شرابش رو پر از آج فیل کرد و راهی قصر پادشاه شد پادشاه که با دیدن اون همه آج از شادی تو پوست خودش نمی گنجید دستور ساخت قصر رو صادر کرد هدایای گرانبهایی به شکارچی کوچیک داد و اون رو به خونش فرستاد حالا اون پرنده خوش نقش و نگار در قصر آجش بود و شاد و بی خیال از این میله به اون میله میپرید و جست و خیز می کرد. اما اما یک کار از پس اون پرنده بر نمی اومد و اون هم آواز خوندم بود مشاور بدذات پادشاه گفت آخ اگر صاحب اصلیش اینجا بود به دلخواه اون چه نقمه هایی که سر نمیداد. پادشاه با اوقات تلخی پرسید حالا چه کسی صاحبشو می شناسه اگرم بشناسه از کجا میدونه که کجاست مشاور بدزاد جواب داد، همون کسی که آجای فیلو براتون آورد، میتونه صاحب پرندرم براتون پیدا کنه. پس، پادشاه باز همپه شکارچی فرستاد و بهش دستور داد که صاحب پرنده رو نزد اون بیاره. شکارچی پرسید، آخه چطور صاحبش رو پیدا کنم وقتی خودم اونو اتفاقی توی جنگل گرفتم؟ پادشاه گفت این دیگه به خودت مربوطه اما اگه پیداش نکنی سرتو از تنت جدا میکنم چهل روز بهت فرصت میدم کاری نکن که کار به روز چهلوی یکم بکشه جوون راهی خونش شد و با صدای بلند بر بخت خودش لعنت فرستاد اما بیا و ببین که ناگهان کلاق پرواز کنند پیداش شد و از جوان پرسید که گریه و زاریش برای چیه؟ جوانک بینوا گفت چرا گریه نکنم؟ و بعد شروع کرد به تعریف کردن ماجرا و مصیبت ای که گرفتارش شده بود. کلاخ گفت آرون بگیر سر هیچ و پوچ که گریه زاری را نمیندازن. همین حالا پاشو برو نزد پادشاه و ازش تقاضای یک کشتی بزرگ بکن. اونقدر بزرگ که چهل دختر خدمتکار یک باغ زیبا و یک اسخر بزرگ توش جا بگیره پسر جوون به قصر پادشاه برگشت و مایه تاج سفرش رو از اون درخواست کرد کشتی رو به ی جوون محیا کردن و اون سوارش شد در این فکر بود که به راست بره، به چپ بره که یهو ها کلاق پرواز کنان پیداش شد و بهش گفت کشتی رو یکسره به راست هدایت کن و راه راست رو بگیر و برو تا به کوه بزرگی برسی. در پای کوه چهل پری زندگی میکنن که با دیدن کشتی تو دلشون پر میکشه برای اینکه سوارش بشن و چیزایی که روی عرشه رو ببینن. اما تو فقط باید به ملکه اونها اجازه بدی که به روی عرشه بیاد چون اونه که صاحب پرنده است. در حالی که داری کشتی رو بهش نشون میدی بدون توقف کشتی رو به سوی خونه هدایت کن جوان پس از شنیدن سخنان کلاق روی عرشه کشتی رفت و اون رو بیوقفه به سمت راست هدایت کرد تا به کوه رسید اونجا چهل تا پری رو دید که کنار ساحل دریا در حال قدم زدن بودند و با دیدن کشتی همشون به سوی کشتی هجوم آوردن تا از نزدیک این ساخته زیبای دست بشر رو برانداز کنند. ملکه پریان از شکارچی کوچک قصه ما خواست تا کشتی رو بهش نشون بده، بخصوص داخل اون رو. جوون هم ملکه رو در قایق کوچکی نشوند و به داخل کشتی برد. پری از دیدن اون کشتی زیبا به وجد اومده بود. روی عرشه به همراه پریان دیگه به قدم زدن پرداخت و با دیدن استخر به دختران خدمتکار گفت حالا که تا اینجا اومدیم بد نیست که تنیم به آب بزنیم. پری اینو گفت و پا به استخر گذاشت و سرگرم شنا کردن شد. در همون حال کشتی به راه افتاد. پری هنوز از شنا کردن فارغ نشده بود که اونها به حد کافی از ساحل دور شده بودند با عجله بیرون اومد چون دیگه داشت دیر میشد اما پاشو که روی عرشه گذاشت اطرافش چیزی به جز آبی دریا ندید و در حالی که زار زار می گریست گفت چی به سرم اومده دارم به کجا میرم در چنگال چه کسی اسیر شدم اما جوان اونو آروم کرد و گفت که قرار به قصر پادشاه بره و با مردمانی خوب و مهربان به سر ببره اونا اندکی بعد به شهر رسیدن و برای پادشاه پیغام فرستادن که کشتی بازگشته جوون هم پری رو به قصر برد و پری در حال گذر از کنار قصر آج پرنده بود که پرنده بنا کرد به آواز خوندن و چنان دلنشین چه, چه میزد که همه اطرافیان پادشاه از شنیدن اون به وجد اومدن پری با شنیدن صدای پرنده یکم به آرامش رسید اما شیفتگی پادشاه بی حد بود و در دل خودش چنان عشقی به پری زیبا رو احساس کرد که دیگه نمیتونست تونست لحظه ای رو هم بدون اون سپری کنه جشن عروسی به سرعت برقرار شد و دیگه توی جهان مردی به شادمانی پادشاه پیدا نمی شد. با اون پری زیبا رو در سمت راستش و اون پرنده نگار در سمت چپش اما اما آتش کینه و دشمنی در وجود مشاور بدذات لحظه به لحظه شعله میشد تا اینکه یه روز سلطان بانو ناگهان در بستر بیماری افتاد و هرچی هم که دوا و درمون کردند افاقه نکرد حکیمان همه بر این نظر بودند که دوای درد او دارویه که در قصر پریان خودش گذاشته. پس شکارچی جوان رو این بار هم بنابر توصیه مشاور بدزاد به قصر فراخوندن و پادشاه بهش دستور داد که بره و داروی پری رو از سرزمینش پیدا کنه و با خودش بیاره. جوان نیکرفتار قصه ما، باز هم سوار کشتی شد و در حال حرکت بود که کلاغ اومد و ازش پرسید که کجا میری؟ جوون به کلاغ گفت که سلطان بانو در بستر بیماری افتاده و اونو فرستادن تا داروش را از قصر پریان بیاره. کلاغ گفت پس برو قصر پریان در پشت یک کوه. در دروازه قصر دوتا شیر استادن. این پر رو بگیر و با اون دهان شیرها رو نوازش کن اون وقتی که کاری به کارت ندارم جوون پر رو گرفت به جلوی کوه رسید از کشتی پیاده شد و با یک نگاه قصر رو از نظر گذروند بعد یک راست به سمت در ورودی رفت که دود تا شیر جلوی اون ایستاده بودن جوون پر رو در آورد و به محض اینکه پر به دهان شیرها خورد هر کدوم به سوی رفتن و راه جوان رو برای ورود به قصر باز کردند. پریان حوالی قصر هم فوراً با دیدن جوان حد زدن که ملکشون بیمار شده پس دارو رو بهش دادن و جوان به سرعت سوار کشتی شد و به قصر پادشاه برگشت اما در همون آنکه دارو به دست وارد اتاق پری شد کلاق روی شونش فرود اومد و اون دوتا با هم بر سر بالین سلطان بیمار رفتن سلطان بانو دیگه در حال احتزار بود اما به محض چشیدن اون داروی شف و بخش به زندگی برگشت چشماشو باز کرد به شکارچی جوون خیره شد و توجهش به اون کلاق جلب شد که روی شونه شکارچی نشسته بود پس رو بهش کرد و گفت ای بنده سیاه خدا، از رنجهایی که این جوون نیکوکار به خاطر من تحمل کرده، متاسف نیستی؟ و بعد به سرورش گفت که اون کلاق خانوم خدمتکارش بوده که به دلیل سهل انگاری در انجام وظایفش تبدیل به کلاق شده و بعد حرفهاش رو اینگونه ادامه داد. بیشک حالا دیگه بخشیده خواهی شد چون که فهمیدم به من وفادار بودی کلاق پس از شنیدن این سخنان سراپا به لرزه افتاد و لحظهی بعد دختری پیش روی شکارچی جوون ظاهر شد که در زیبایی و دلربایی دست کمی از ملکه پریان نداشت به درخواست سلطان بانو پادشاه جوون رو به عقد کلاق پری در آورد و اون مشاور بدذاتش رو تبعید کرد و به جای اون جوون شکارچی رو بر مصند صدارت نشوند. و به این ترتیب اونا همگی تا دم مرگ شاد و خورم به زندگیشون ادامه دادن و این بود قصه کلاقی از سرزمین پریان دختری که حتی وقتی جادوی سختی شکلش رو عوض کرد دلش همون دل مهربون موند. گاهی همین وفاداری و خوبی بی سداست که جادو رو شکست میده. ممنونم که تا آخر قصه همراه هم بودی. اگه این افسانه رو دوست داشتی برام بنویس. اگه دوست داشتی کسی دیگه همین قصه رو بشنوه براش بفرست. تا قصه بعدی مراقب دل مهربونت باش. خدا نگهدار